دشمنی ضعیف که در طاعت آید و دوستی نماید مقصود وی جز آن نیست که دشمن قوی گردد و گفتند بر دوستی دوستان اعتماد نیست تا به تملق دشمنان چه رسد و هر که دشمن کوچک را حقیر می‌دارد بدان ماند که آتش اندک را مهمل میگذارد. امروز بکش چو میتوان کشت، کاتش چو بلند شد، جهان سوخت، مگذار که زه کند کمان را دشمن که به تیر میتوان دو.